درود بر همه شما عزیزان در این زمان مهمترین انامید خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشت را به سم شما عزیزان میرسونم انتقاد رسانه های جهانی از بازدید نمایندگان دانمارکی از اردوگاه های نارو دانمارک میخواهد از رفتار استرالیا در قبال پناهجویان الگو کند در پی انتشار اخبار گوناگون مربوط به سفر یک گروه از نمایندگان مجلس دانمارک از اردوگاه های پناهجویان در جزیره نارو باعث بروز جنجال در رسانه‌ای جنجال رسانه‌ای گسترده علیه سیاست های این کشور در قبال پناهجویان شده است. هفته گذشته گروهی از نمایندگان مجلس دانمارک که در کمیته رسیدگی به امور پناهجویان و مهاجرت عضویت دارند اعلام کردند که قصد دارند از های پناهجویی ناورو در استرالیا بازدید کنند. در پی انتشار این خبر، رسانه‌های عمده جهانی از جمله گاردین و بی بی سی ضمن به چالش کشیدن سیاست های دولت دانمارک در قبال پناهجویان، این سوال را مطرح کردند که چرا نمایندگان مجلس این کشور به بررسی دوباره سیاست های خود در قبال پناهجویان روی نمی‌آورند. در این میان حتی برخی رسانه‌ها با استناد به سخنان قائم مقام حزب ضد خارجی دنگس پارتی که خواهان استقرار پناهجویان در قطب شمار شده بود نوشتند شاید دانمارکی ها میخواهند از رفتار غیر انسانی مقامات دولت استرالیا علیه پناهجویان الگو کنند ما این همه خانم یوهان اشمیت نیلسن رهبر پیشین حزب چپگرای اتحاد سبز و قرمز به روزنامه گاردین گفته است هدف او از این بازدید به چالش کشیدن سیاست های غیر انسانی دولت استرالیا علیه پناهجویان و دیدار و گفتگو با گروه های حامی حقوق بشر در استرالیا برای نقد و انتقاد از سیاست های دولت دولت این کشور علیه پناهجویان است که با قایق خود را به استرالیا می رسانند. جنجالی شدن این بازدید زمانی رخ داده است که نام مارتین هنیکسن که یکی از مخالفان سرسخت حضور خارجی ها و دبیر امور مهاجرت حزب دنکسفورت پارتی نیز در میان نمایندگان بازدید کننده از اردوگاه‌های نارو دیده می‌شود. تلویزیون ABC از مهمترین رسانه‌های آمریکایی با کنایه زدن به گروه نمایندگی دانمارکی که بازدید از نارو را در برنامه خود دارند، گفته است در میان این گروه هنریکسن نیز وجود دارد. سیاستمدار دانمارکی که رفتار دولت استرالیا با پناهجویان را معقول توصیف کرده است این رسانه سفر تیم پارلمانی دانمارک به نارو را سفری تحقیقاتی برای الگوبرداری از دادن احداث اردوگاه پناهجویی در جزایر دورافتاده توصیف کرده است اردوگاه پناهجویان نارو یکی از بدنام ترین اردوگاه های پناهجویی در سراسر جهان است مراسم ختم حامد زارعی پناصوی غرق شده در دانمارک تعدادی از دوستان و آشنایان حامد زارعی که چند روز پیش در جلوی چشمان سی نفر غرق شد دور هم جمع شدند و مراسم ختمی به یاد این جوان پناصو برگزار کردند همچنین پلیس پلیس دانمارک از پیدا شدن جسد این پناصو ایرانی خبر داده و باز از استرالیا یک پناصوی ایرانی در بازداشتگاه استرالیا بار برنده جایزه کاریکاتور شد. یک پناهجوی ایرانی در بازداشتگاه پاپاوای گیننو از که توسط دولت استرالیا اداره می شود و پناهجویان غیرقانونی در آن به سر میبرند، برنده جایزه کاریکاتور سیاسی شد که درباره زندگی در داخل اردوگاه کشیده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پناهجو 25 ساله که نام او علیس سه سال زندگی خود را در بازداشتگاه پناهجویان در جزیره مانوس و مشکلات آن را که باعث بروز نارتی های روحی و روانی می‌شود به تصویر کشیده است. جانت گرلبی وزیر استرالیایی علی می‌گوید این جایزه برای او به عنوان یک کاریکاتوریست جوان خیلی معنا دارد. به گفته ای او علی صدمات روحی زیادی دیده و نیاز به مراقبت و درمان دارد. کاریکاتور این پناهجوی جوان ایرانی که به نوشته رویترز مدرکی است دال بر سختگیرانه بودن سیاست مهاجرتی استرالیا پیشتر در روزنامه گاردین چاپ شده بود برندههای قبلی این جازه کاریکاتورهایی بودند که بابت آثارشان زندانی یا مجازات شدهاند بیش از هفتاد چادر اسکان موقتی پناهجویان در اردوگاهی در حومی کرکوک در شمال عراق به دلایل نامعلومی دچار حریق شدند. کمیساریای عالی پناهندگان اعلام کرد این حادثه علاوه بر خسارات مادی فراوان، تلفات جانی نداشته است. سخنگوی این سازمان در بغداد از وصول درخواست وزارت پناهجویان و آوارگان عراق برای تهیه و ارسال چادر و امکانات اولیه زندگی برای ساکنان این اردوگاه خبر داد. بیش از 500 خانواده آواره و جنگ زده در این اردوگاه که تحت نظارت شورای استانی داره می شود اقامت دارد و خبری از ایتالیا گارد ساحلی ایتالیا می گوید روز دوشنبه در جریان چهل عملیات نجات توانسته است بیش از 6500 مهاجر را از مدیترانه نجات و به مراکز اقامت مهاجران در جزایر ایتالیا انتقال دهد روز یکشنبه نیز بیش از هزارو مهاجر دیگر در فاصله آبهای لیبی تا سواحل ایتالیا از دریا گرفته شدند همزمان با نجات و انتقال این مهاجرات به جزایر ایتالیا وزیر خارجه لهستان در جریان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برلین با انتقاد از سیاستهای مهاجرت اروپا گفت روش بکار رفته توسط کمیسیون اروپا در رابطه با مهاجرت غیرشفاف است و نه تنها هیچ مشکلی را حل نکرده بلکه خود یک مشکل جدید در این میان به وجود آورده است به گزارش کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل 105,000 هزار مهاجر از ابتدای سال جاری میلادی تا اوایل ماه اود از طریق مدیترانه وارد اروپا شدند با احتساب نجادی یافتگان روزهای یک شنب و شنبه و دوشنبه تعدادی مهاجران که در مراکز پذیرش مهاجران در جزایر ایتالیا ثبت نام شدهان به بیش از یازده و دویی هزار نفر رسیده است. بیشتر مهاجران از اتباع کشورهای آفریقای غربی یا منطقه شاخه آفریقا هستند. پرتغال به دنبال پذیرش پناهجوی بیشتر، زیرا ها پناهجویان را دوست دارند. در حالی که اکثر کشورهای اروپایی با پذیرش پناهجویان مشکل دارند اما پرتغال با آغوش باز پناهجویان را میپذیرد و ظرفیت پذیرش ده هزار پناهجو را اعلام کرده خبری داریم از آلمان تأكید آلمان و ایتالیا به برگشت پناهجویان رد شده به وطنشان مرکل اعظم آلمان آلمان فدرال به هنگام مذاکراتش در ایتالیا هشدار داد که پناهجویان رد شده باید کشور را ترک گویند. روز چهارشنبه مرکل در نشست سران آلمان و ایتالیا در ایتالیا گفت که آلمان و ایتالیا مشکلات مشابهی در ارتباط با تعداد مهاجران تازه وارد دارند. یک سال پس از آن از آن روزی که آلمان سیاست در باز برای پناهجویان را اعلام داد مرکل گفت که امیدوار است مهاجران رد شده بیشتری به کشورهایشان برگشت داده شوند و این موضوعی است که در مذاکرات برای قبولی مجددشان توسط کشورهای مبدا مطرح می باشد این دو مقام موافقت, موافقت میکنند که اتحادیه اروپا نمیتواند همه مهاجران را حفظ کند و آنها نیاز دارند تا مشی تری برای برگشت دادن به وطن آنان آن مهاجرانی که اتخاذ کنند که واجد شرایط پناهندگی نمی باشند و در اتریش یک پناهجو توسط پلیس اتریش پس از اینکه یک دوشق سوار به آنها گزارش داد در مسیر یک زن, زن جیغ و فریاد دستگیر شد گفته شده که قربانی تجاوز یک زن ایرانی 34 ساله و متهم به تجاوز نیز یک مرد جوان 25 ساله ای ایرانی هستند پلیس پس از گزارش دو سوار به سرعت به محل وقوع جرم حاضر می شود. نشانه بریتانیایی اکسپرس گفته از قربانی 34 ساله تجاوز به کمک متجم به پلیس می گوید متهم ابتدا به او حمله کرده و سپس او را مورد تجاوز جنسی قرار داده است. پس از تحقیقات پلیس، پلیس محلی مشخص می شود متهم در یک مرکز نگهداری از پناهجویان در نزدیکی محل وقوع جنایت زندگی می کرده. در گزارش پلیس آمده است وی در هنگام ارتکاب جرم به شدت مست بوده است روزتون بخیر در هر کجای این کره خاکی هستید